مصنوی معنوی مولوی برنامه یکصد و و چهارم دادن شاه گنج نامه را به آن فقیر که بگیر ما از سر این برخواستیم. چون <متحدث> که رقعه گنج پرآشوب را شه مسلم داشت آن مکروب را گشت آمن اوز خسمان و زنیش رفت و می پیچید در سودای خیش یار کرد او عشق در دندهش را کلب، لیسد خیش ریش خیش را عشق را در پیچش خود یار نیست محرمش در ده یکی دیار نیست نیست از عاشق کس دیوانتر عقل از سودای او کورست و کر. زان که این دیوانگی عام نیست. تبرا ارشاد این احکام نیست. گر طبیبی را رسد زینگون جنون دفتر تبرا را فرو شوید بخون. تب جمله عقل ها من قوش اوست، روی جمله دلبران رو پوش اوست. روی در روی خدار، ای عشق کش، نیست ای مفتون، ترا جز خیش، خیش. قبل از دل ساخت، آمد در دعا، لیس الانسان الا ما سعا. پیش از آن کو پاسخ بشنیده بود، سالها اندر دعا پیچیده بود، به اجابت بر دعاها می تنید. از کرم لبیک پنهان می شنید، چون که به رقص می کرد آن علیل، زیتماد جود خلاق جلیل، سوی او نه حاطف و نه پایک بود. گوش امیدش پر از لبایک بود. بی زبان می گفت امیدش تعال. از دلش می رفت آن دعوت ملال. آن کبوتر را که با ما موخته است تو مخان می رانش کان پردوخته است. ای زیا الحق حسام الدین برانش، که از ملاقات تو بر است جانش. گر برانی مرغ جانش از گذاف هم بگرد بام تو آرد تواف. چینه و نقلش همه بر بام توست. پرزنان بر اوج مست دام توست. گردم منکر شود دزدانه روح در ادای شکرت ای فتح و فتح شهنه اشق مکرر کینش تشت آتش می نهد بر سیناش که بیا سوی مهو بگذر زگرد شاه عشقت خاند زودتر بازگرد گرد این بام و کبوتر خانه من چون کبوتر پرزنم مستانه من جبرئیل عشقم و صدرم توی من سقیمم ایسی مریم توی جوش ده آن بحر گوهربار را خوش بپرس روز این بیمار را چون تو آن او شدی بر آن اوست گرچه این دم نوبت بحران اوست این خدا ناله است کو کرد آشکار آن چه پنهان است یارب زینهار دو دهان داریم گویا همچون نی یک دهان پنهانست در لبهای وی یک دهان نالان شده سوی شما های هوی در فکنده در هوا لیک داند هر که او را منظره است که فقان این سری هم زان سر است دم این نای از دمهای های اوست های هوی روح از های های اوست گر نبودی با لبش نای را سمر نی جهان را پر نکردی از شکر با که خفتی و از چه پهلو خواستی که چنین پر جوش چون دریاستی یا عبی تو اندربی خانده در دل دریای آتش رانده ناره نعره یا نارکونی باردا اسمت جان تو گشت ای مقتدا ای زیا الحق حسام دین و دل توان اندود خورشید به گل قاست کرده ستند گل پاره ها که بپوشانند خورشید تو را در دل که لال دلال توست باغها از خنده مالامال توست محرم مردید را کورستمی، تازه صد خرمن یکی جو گفتمی. چون بخواهم که سرت آهی کنم، چون علی سر را فروچاهی کنم. چون که اخوان را دل کینوره است، یوسفم را قعر چه اولاتر است، مست گشتم خیش بر غوغا زنم چه چه باشد خیمه بر صحرا زنم بر کف من شراب آتشین وانگه آن کر و فر مستانه نبین منتظر گو باش بیگنج آن فقیر زان ما غرق میندم در اسیر از خدا خواه ای فقیر این دم پناه، از من غرق شده یاری مخواه که مرا پروای آن اسناد نیست، از خود و از ریش خیشم یاد نیست. باد سبلت کی بگنجد، وابرو در شرابی که نگنجد، تار مو درده ای ساقی یکی رتل گران را از ریش و سبلت وارهان نخوتش بر ما سبال می زند لیک ریش از رشک ما بر کند. مات او و مات او و مات او که همی دانیم تزبیرات او از پس صد سال آن چاید از او پیر می بیند معین مو بمو. اندر آینه چه بیند مرد آم که نبیند پیر اندر خشت خام. آن چه به خانه خود ندید هست بر کوسه یکا یک آن پدید. رو به دریایی که ماهی زاده ای همچو خس در ریش چون افتاده ای خس دور از تو رشک گوهری در میان موج و بر اولاتری بهر وهدان است جفت و زوج نیست گوهر و ماهیش غیر موج نیست ای محال ای محال اشراک او دور از آن دریا و موج پاک او. نیستند در بر شرک و پیچ پیچ. لیک با احول چگویم؟ هیچ. هیچ. چون جفت احولانیم ای شمن لازم آید مشرکانه دم زدن. آن یکیی زانسوی وصفست و حال جزدوی ناید به میدان مقال یا چو احول این دویی را نوش کن یا دهان بردوز و خوش خاموش کن یا به نوبت گه سکوت و گه کلام احولانت تعبل میزن و سلام چون ببینی محرم، گو سر جان گل ببینی نعرزن چون بلبلان چون ببینی مشک پرمک و، مجاز لب ببند و خیشتن را خانب ساز دشمن آب است پیش او مجانب ورنه سنگ جهل او بشکست خان با سیاست های جاهل صبر کن، خوش مدارا کن به عقل من لدون. سابر با ناعل اهلان را جلیست. صبر صافی می کند هر جا دلیست. آتش نمرود ابراهیم را صفوت آینه آمد در جلا. جور کفر نوحیان و صبر نوه نوه را شد سیقل مرعات روح حکایت مرید شیخ حسن خرقانی قدس الله و سره رفت در درویش ز شهر طالقان بحرسیت بلحسن تا خارقان کوهها ببرید و بادی دراز بهر دید شیخ با صدق و نیاز آنچه در ره دید از رنج و ستم گرچه در خورده است کوته می کنم چون با مقصد آمد از ره آن جوان خانه آن شاه را جست او نشان چون بسد حرمت بزد حلقی درش زن برون کرد از در خانه سرش که چه می خواهی بگو ایزول کرم گفت بر قصد زیارت آمدم خنده زد زن که خاخه ریش بین این سفرگیری و این تشویش بین خود تو را کار نبود آن جایگاه که به بیهوده کنی این عزم راه گلگردی گولگردی آمدد یا ملولی وطن غالب شدد یا مگر دیوت دو شاخه برنهاد، تو وسواس سفر را درگشاد. گفت نافرجام و فخش و دمدمه، من نتانم باز گفتن آن همه. از مثل وزریش خنده به حسیب، آن مرید افتاد از غم در نشیب. پرسیدن آن وارد از حرم شیخ که شیخ کجاست کجا جویم و جواب نافرجام گفتن حرم شیخ. اشکش از دیده بجست و گفت او با همه آن شاه شیرین نام کو. گفتان سالوس زراق توهی دام گولان و کمند گمرهی صد هزاران خام ریشان تو افتاده از وی اندر صد اوتو گر نبینی شو سلامت واروی خیر تو باشد نگردی زو غوی لافکیشی کاسلیسی تاب خار تبلش رفته اطراف دیار سبتی اند این قومو گو پرست در چونین گاوی چه میمالند دست جیفت و است و و نهار هر که او شد غره این تاب خار، هشتند این قوم. صد علم و کمال مکر و تزبیر گرفته کینست حال آل موسا کو دریغا تا کنون آبدان اجل را ریزند خون شرع و تقوا را فگنده سوی پشت کو عمر کو امر معروف درشت کین اباحت، زین جماعت فاش شد، رخصت هر مفسد قلاش شد. کو ره پیغامبر و اصحاب او، کو نماز و صبح و آداب او. جواب گفتن مرید و زجر کردن مرید آن تعانه را از کفر و بیهوده گفتن بنگ زد بروی جوان و گفت بس روز روشن از کجا آمد اساس نور مردان مشرق و مغرب گرفت آسمانها سجده کردند از شگفت آفتاب حق برآمد از حمل زیر چادر رفت خورشید از خجل ترهات چون تو ابلیس مرا کی بگرداند ز این سرا من به بادی نامدم همچون صحاب تا بگرد بازگردم زین جناب اجل با آن نور شد قبله کرم قبله بی آن نور شد کفر و سنم هست اباحت کس هوا آمد زلال هست اباحت کس خدا آمد کمال کفر ایمان گشت و دیو اسلام یافت آن طرف کن نور بی اندازه تافت مظهر ازست و محبوب به حق از همه کروبیان برده سبق سجده آدم را بیان سبق اوست سجده آرد مغز را پیوست پوست شمعهق را پف کنی تو ای عجوز هم تو سوزی هم سرت ای گند پوز کی شود دریا ز پوز سگ نجس کی شود خورشید از پف منتمس حکم بر ظاهر اگر هم می کنی چیست ظاهرتر بگو زین روشنی جمله ظاهرها به پیش این ظهور باشدن در غایت نقص و قصور هر که بر شمع خدا آرد پفو شام کی میرد بسوزد پوز او چون تو خفاشان بسی بینند خواب کین جهان ماند یتیم از آفتاب موجهای تیز دریاهای روح هست صد چندان که بود طوفان نه لیک اندر چشم کنعان موی راست نه کشتی را بهشتو کوه جاست کوه کن آن را فرو برد آن زمان نیم موجه تا قعر امتحان محفشاند نور و سگ وعوه کند سگ ز نور ماه کی مرتع کند شبروان و همرهان مح بتگ ترک رفتن کی کنند از بانگ سگ جوز سوی کل دوان مانند تیر کی کند وقف از پیه هر گند پیر جان شرع و جان تقوا آرف است معرفت محصول زهد سالف است زهد اندر کاشتن کوشیدن است. معرفت آن کشت را رویدن است. پس چوتن باشد جهاد و اعتقاد. جان این کشتن نبات است و حساد. امر معروف او هم معروف او است، کاشف اسرار و هم مکشوف اوست، شاه امروزی نبا فردای ماست، پست بنده مغز نغزش دای ماست. چون ان الحق گفت شیخو پیش برد، پس گلوی جمله کوران را فشرد چون انای بنده لا شد از وجود پس چه ماند تو بیندش ای جهود گر تو را چشم است بکشا در نگر بعد لا آخر چی میماند ماند دگر ای بریده آن لب و حلق و دهان که کند توف سوی مه یا آسمان توف برویش بازگردد بیشکه تف سوی گردون نیابد مسلکه تا قیامت توف برو بارد زرب همچود تبت بر روان بولهب رایت هست ملک شهریار سگ کسی که خاند او را تبل خار آسمان ها بنده ماه ویند شرق و مغرب جمله نانخواه ویند زان که لولاک است بر توقیع او جمله در انعام او در توزیع او گر نبودی او نیابیدی فلک گردش و نور و مکانی ملک گر نبودی او نیابیدی بهار حیبت و ماهی و در شاهوار گر نبودی او نیابیدی بیدی زمین در درونه گنج و بیرون یاسمین رزقها هم رزق خاران ویند میوه ها لبخشک باران ویند هین که معکوس است در امر این گره صدقه بخش خیش را صدقه بده از فقیر استت همه زر و حریر هین غنی را ده زکات ای فقیر چون تو ننگی جفت آن مقبول رو، چون ایاله کافر اندر عقد نوح گر نبودی نسبت تو زینسرا پاره پاره کردمی ایندم تو را دادمی آن نوه را از تو خلاص تا مشرف گشتم من در قصاص لیک با خانه شهنشاه زمن اینچنین گستاخی ناید زمن را دعا کن که سگه این موتنی ورنه اکنون کردمی من کردنی واگشتن مرید از وساق شیخ و پرسیدن از مردم و نشان دادن ایشان که شیخ به فلان بیشه رفته است بعد از آن پرسان شده او از هر کسی، شیخ را می جست از هر سو بسه. پس کسی گفتش که آن خود به دیار رفت تا هیزم کشد از کوهسار آن مرید زلف تفت در هوای شیخ سوی بیشه رفت. می آورد پیش هوش مرد وسوسه تا خفیه گردد محض گرد کینچون این زن را چرا این شیخ دین داردن در خانه یار و هم نشین؟ زد را با زد ایناس از کجا؟ با امام و ناس نس از کجا؟ باز او لاحول می کرد، آتشین که اعتراض من برو کفر است و کین. من که باشم با تصرف های حق که برارد نفس من اشکال و دق؟ باز نفسش هم نمی آورد، زود زین تعرف در دلش چون کاه دود، که چه نسبت دیو را با جبرئیل که بود با او به صحبت هم مقیل چون تواند ساخت با آزر خلیل چون تواند ساخت با رحزن دلیل پرنامه های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج تهیه و اجرا کردند.